شماریه 72. عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید. ضمن بررسی کل کتاب مقدس ما به عهد جدید رسیدیم. شاید به تجربه فهمیده باشید که وقتی در اطاعت از نقشه های خدا زندگی میکنیم شادتر هستیم. پولس رسول هم این رو می دونست. در درس امروز معلم ما به مطالعه آخرین نامه پولوس رسول دوم تیموتاوس ادامه میده. بیاید قلب همون رو آماده کنیم تا چیزی رو که خدا میخوا توسط معلممون به ما تعلیم بده یاد بگیریم. تمامی آیات دوم تیموتاوس باید در زمینه شرایط وحشتناکی بررسی بشه که پولس رسول موقع نوشتن آخرین سخنانش به تیموتاوس در اون قرار داشت. پولس تیموتاوس را پرورش داده بود تا به خاندگی بزرگ خودش به عنوان شبان آماده بشه در این سخنان پولس به تیموتاوس او سالها تعالیمش رو خلاصه میکنه در این آیات در انتهای باب دوی دوم تیموتاوس پولس به تیموتاوس مطالبی را یادآوری میکنه که قبلا به او درباره یه مشاوره تعلیم داده بود من این آیات رو از کتاب مقدس براتون خونم. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش زیرا میدانی که به نظامی انجامد. خادم خداوند نباید نظا کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. به این وسیله به خود خواهند آمد و از دام ابلیس که آنان را گرفتار ساخته و به اطاعت اراده خیش وادار کرده است خواهند گریخت وقتی که ما آخرین وصیت و عهد پولس رسول رو بررسی می کنیم، آخرین سخنانش رو خطاب به تیموتاوس و خطاب به ما به متنی در انتهای باب دو می رسیم که در اونجا شبان پیر به شبان جوان تیموتاوس می گه که چطور به مردم برای حل مشکلاتشون کمک کنه. امروز ما به این مشاوره می گیم. در ایام پولس و تیموتاوس، اونها به این شبانی می گفتن. در اینجا پولس به میگه که چطور به مردم که مشکلات بزرگی دارن برای حل مشکلاتشون کمک کنم این متن از کلمه خود استفاده زیبایی میکنه اگر یادتون باشه در جلسات قبلی در مورد کلمه خود صحبت کردیم و گفتیم که معنی لغوی کلمه خود بی همتایی است فردیت هر شخصی که او رو از سایرین متمایز میکنه وقتی پولس به تیموتائوس میگه چطور به این مردم مشورت بده به او میگه تیموتائوس مشکل این مردم این هست که اونها مخالف خودشون هستند. خدا برای شخصیت اونها و اینکه چی باشند و کجا باشن نقشه‌ای داره. خدا برای زندگی اونها نقشه‌ای داره که اونها رو افرادی منحصر به فرد و متمایز از هر شخص دیگری در روی زمین میکنه. اونها برخلاف اون نقشه زندگی می‌کنند و خودشون نیستن. اونها بر ضد خودشون هستند. اونها با نقشه خدا برای زندگی خودشون مخالفت می‌کنند. دلایل زیادی هست که چرا مردم این کار رو میکنن. اولین دلیلش اینه که گاهی والدین مقصر هستند که به فرزندانشون میگن باید مثل برادرت یا خواهرت یا اشخاص دیگه باشی. شاید به این دلیل باشه که مردم خودشون رو با دیگران مقایسه میکنند و از اونها تقلید میکنند و یا به دیگران اجازه میدن که اونها رو کنترل کنن. راهای زیادی هست که ما میتونیم خودمون رو گم کنیم. اگر با خودتون مخالفت کنید، اگر با نقشه خدا مخالفت کنید که شما رو تراهی کرده تا شخصی منحصر فرد و متمایز از دیگران باشید اون وقت به مشکل بزرگی دچار میشید در ضمن خودتون هم غمگین خواهید بود شما کسی خواهید بود که مشکلات زیادی داره و به مشاوره نیاز خواهید داشت اگر نزد شبان مشاوری برید و اون شبان توسط پولس رسول تعلیم دیده باشه او متوجه خواهد شد که مشکل شما اینه که با خودتون مخالفت میکنید او چون از پولس رسول تعلیم دیده همینطور متوجه میشه که راه حل مشکل شما اینه که خودتون را از چنگال شریر نجات بدید چونکه شما توسط شیطان به اسارت گرفته شدید و تحت اختیار او هستید یادتونه وقتی اناجيل رو بررسی میکردیم بهتون گفتم که عیسی آمد تا مردم رو آزاد کنه خدمت عیسی برای کسانی بود که اسیر بودند یا کسانی که آزاد نبودند عیسی به این بردگی میگفت و دوست نداشت از کنار کسانی که برده بودند تفاوت بگذره عیسی میخواست در اجرای نبوت اشعیا اسیران از رو آزاد کنه. او این رو در بیانیه ناصره اعلام کرد. بیشترین قسمت خدمت عیسی بر آزاد کردن اسیران از روحانی متمرکز بود. پولس اینجا اینو برای تیموتاوس توضیح میده. پولس میگه تیموتاوس این کسانی که با خودشون مخالفت میکنن باید خودشون رو از چنگال شیطان رها کنن. اونها آزاد نیستن. تو نمیتونی اونها را از شیطان بیرون بیاری. اما میتونی کلید خروج از چال شیطان رو به اونها بدی. اگر میوه‌های روح القدس رو حفظ کنی، او اینجا به سه میوه روح القدس اشاره میکنه. اگر میوه‌های روح القدس رو مثل فروتنی، مهربانی، حفظ کنی و با صبوری بیشتری به مردم گوش کنی، شنوندگانی پیدا خواهی کرد. اون وقت قادر خواهی بود اونها رو تعلیم بدی و حقایقی رو به اونها بدی که اونها رو آزاد کنه. اون وقت این امکان رو برای روح فراهم خواهی کرد که در زندگی اونها کار کنه وقتی کتاب مقدس رو به اونها عرضه کنی حقیقتی که اونها نیاز دارن تا بشنون و آزاد بشن وقتی به عنوان یک مشاور این کار رو بکنی بقیهش بین اونها و خدا هست خدا به اونها روح توبه خواهد داد و در نتیجه اونها به حقیقتی اقرار خواهند کرد تا خودشون را از چنگال شیطان آزاد کنند یا به طریق دیگری میشه گفت اونها از خدا روح توبه رو دریافت میکنند که اونها را قادر میکنه به حقیقتی اقرار کنند که باید به اون اقرار بشه تا از چاله شیطان آزاد بشه وقتی بفهمید که اینجا جریان چیه پولوس چگونه خدمت شبان مشاور رو توضیح میده اون وقت چهار راز روحانی خدمت رو خواهید فهمید که من بارها به اون اشاره کردم این چهار راز عبارت بودند از من نیستم بلکه او هست و من در او هستم و او در من هست من نمیتونم اما او میتونه و من در او هستم و او در من هست من نمیخوام اما او میخواد. و من در او هستم و او در من هست. و بعد وقتی معجزه اتفاق افتاد «من انجام ندادم او انجام داد چون من در او بودم و او در من بود. این حقیقت در هیچ کجا بیشتر از خدمت مشاوره نیست چون که وقتی شما سعی دارید به کسی مشاوره بدید و متوجه هستید که با چه چیزی برخورد می کنید، وقتی بفهمید کسی که میخواهید به او کمک کنید دستیر شیطان هست و شما می خواهید زندگی او را نجات بدید، اون موقع مثل موسا خواهید فهمید که شما نمیتونید کسی رو نجات بدید. همونطور که خدا از میان بوته مشتعل به موسا گفت موسی تو ناجی نیستی بلکه من هستم. تو نمیتونی کسی رو نجات بدی، ما من میتونم. وقتی موسی توسط خدا برای نجات بنی اسرائیل به کار گرفته شد، هیچکس لازم نبود به موسی موسا تو این قوم رو نجات ندادی، خدا اونها رو نجات داد چون او با تو بود. همون حقیقت در مورد شرایط ای که پولوس برای تیموتاوس شرح میده هم صدق میکنه. تیموتاوس تو نجات دهنده نیستی. روح القدس نجات دهنده است. تو نمیتونی کسی رو نجات بدی اما روح القدس میتونه مردم رو از اسارت شیطان آزاد کنه. اگر تو فقط مأموری برای روح القدس باشی و ای برای حقیقت کلام خدا اون وقت میتونی نیروی رو به کار بیندازی که میتونه شخص رو نجات بده. اما وقتی این کار رو کردی، باید سجده کنی و به این واقعیت اعتراف کنی که تو نجات دهنده نیستی و تو اونها رو نجات ندادی. تو فقط نیروهایی رو وارد عمل کردی که اونها نجاتی رو که محتاجش بودن دریافت کردند. من فکر می کنم این یکی از ترین چیزهایی است که در مورد مسئله مشاوره نوشته شده. من معتقدم بهتره که وقتی قصد داریم به کسی مشورت روحانی و شبانی بدیم، نگاه عمیقی به این قسمت بیندازیم. در ادامه بررسی نامه دوم تیموتاوس به جایی میرسیم که من اون رو قلب این نامه میدونم. وقتی به باب سه آیه ده میرسید، به متنی میرسید که تا باب چهار آیه پنج ادامه داره. این متن قلب این نامه هست. ملاحظه کنید که در این متن پولس چند بار به تیموتاوس میگه تو میدانی، تو میدانی. وقتی میشنوید که پولس بارها و بارها به تیموتاوس میگه تو میدانی، یادتون باشه که پولوس در زندان مامرتین در زنجیر هست. پولس میدونه که اعدام خواهد شد. شاید هفته ها یا روزها و یا ساعاتی بعد از نوشتن این نامه و فرستادن مخفیانه آن به تیم پولس پولوس میدونه که مرگ او قریبال است هست وقتی که او آخرین حرفهاش رو به تیم میزنه ما باید اعتبار سخنان پولس رو احساس کنیم. وقتی پولس بارها و بارها به تیم میگه تو میدانی از خودتون بپرسید تیم از کجا چیزهایی رو که پولس میگه میدونسته. من معتقدم تیموتاوس این چیزها رو می‌دونسته چون رابطه نزدیکی با پولس رسول داشته و تعالیم و اصولی رو از این رسول پیر بود. یکی از مهمترین آیات در این نامه باب دو آیه 2 هست. اونجا که پولس به تیموتائوس میگه و سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند. این اصل زیبایی در تعلیم هست. آشکارا تعالیمی را که پولس به دیگران میداده شنیده بود پولس به او در باب دو آیه دو میگه سخنانی را که در حضور شاهدان بسیار از من شنیده ای به کسانی بسپار که مورد اعتماد و قادر به تعلیم دیگران باشند این برای ما الگو و اصل زیبایی برای تعلیم میده گاهی دانشگاه ها چنین تعالیمی میدن اما گاهی این نو تعلیم زمانی داده میشه که یک شبان جوان دانشگاه رو تموم میکنه و به مدت یکی دو سال با یک شبان ارشد کار می کنه این شبان ارشد در یک رابطه ی پدر و فرزندی در زمینه ای تعلیمی این حقایق رو به شبان جوانتر انتقال میده. به کررات در این متن پولس به تیموتاآوس میگه تو میدانی. پولس همه این چیزها را از کجا می دونه؟ جواب بدیهی برای این سوال این هست که تیموتاوس این چیزها رو به این جهت میدونسته که در رابطه ی پدر و فرزندی خودش با پولس در زندگی پولس ملاحظه کرده بود. در ادامه بررسی نامه دوم تیموتاوس می‌بینیم چیزی که پولس واقعاً تیموتاوس رو با اون به چالش کشیده این سوال هست. تیموتاوس با تمام چیزهایی که می‌دونی چی کار خواهی کرد؟ این قلب نامه دوم پولس به تیموتاوس هست. دوباره پولس رو در شرایطی که این نامه رو برای تیموتاوس مینوشت مجسم کنید. می‌خوام این متن رو تفسیر کنم. تو منو دیدی و میدونی که من چنین شخصی نیستم. تو می‌دونی من به چی ایمان دارم و چطور زندگی می‌کنم؟ و چی میخوام تو ایمان منو به مسیح میدونی و میدونی که چقدر رنج کشیدم میدونی که من چقدر دوستت دارم میدونی که چقدر صبورم میدونی که در نتیجه موعظه انجیل با چه مشکلاتی مواجه بودم میدونی که وقتی از انتاکیه و لستر دیدار میکردم چی بر سرم اومد اما خداوند منو نجات داد بله کسانی که تصمیم میگیرند با زندگیهای های خداشناسانه خداوند عیسی مسیح را خوشنود کنند از دست کسانی متحمل رنج میشن که از مسیح نفرت دارن در واقع مردان شریر و معلمین دروغین بدتر و بدتر خواهند شد بسیاری را گمراه خواهند کرد چون خودشان توسط شیطان گمراه شدند. اما تو باید به چیزهایی که آموخته ایمان داشته باشی تو میدونی که اونها حقیقت هستند. چون میدونی میتونی به کسانی که به تو تعلیم دادن اعتماد کنی تو میدونی وقتی کودکی بودی کتاب مقدس رو یاد گرفتی و به این خاطر که حکمت یافتی تا با اعتماد بر عیسی مسیح نجات خدا رو دریافت کنی کل کتاب مقدس با مکاشفه ی از خدا به ما داده شده و برای تعلیم حقیقت به ما مورد استفاده قرار میگیره و به ما امکان میده که بفهمیم چی در زندگی های ما خطا هست اون به ما قدرت میده و به ما کمک میکنه تا کار درست رو انجام بدیم این روش خدا برای آماده کردن ما در هر مرحله ای هست ما تماما تجهیز میشیم تا با هر کسی رفتاری درست داشته باشیم بنابراین در پیشگاه خدا و عیسی مسیح که روزی زندگان و مردگان را داوری خواهد فرمود تو را مکلف میسازم که در هر موقعیت و در وقت و بی وقت کلام خدا را اعلام نمایی آماده باش تا هر وقت لازم شد مؤمنین را اصلاح و توبیخ و تشویق کنی همواره با صبر و بردباری کلام خدا را به ایشان تعلیم بده زیرا زمانی خواهد رسید که مردم دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخن میگویند ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود بلکه کورکورانه به دنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت اما تو در همه شرایط استوار بیست و از زحمت دیدن در راه خداوند نترس مردم را به سوی مسیح هدایت کن و وظایف خود را بی و کاست انجام بده. حالا میبینید که چرا من میگم این مد قلب این نامه هست چون که این نکته ای هست که پولس به تیموتاوس میگه. اما تو خود میدانی که من از این قبیل افراد نیستم. تیموتاوس از کجا میدونست پولس چطور آدمی هست؟ تیموتاوس میدونست پولس چطور آدمی هست چون با پولس زندگی کرده بود، با او راه رفته بود و با او کار کرده بود. شما را به چالش میکشم؟ اگر شما یک نوع ایمان یا شبان جوان کم ای هستید باید دعا کنید خدا شما را به سمت ایمانداری بالغ و یا شبانی قدیمی هدایت کنه در ده سال اول شبانان جوان کم تجربه خطرات شکست فراوانی هست اون صدمات خدمتی معمولا وقتی اونها با افراد کارازموده و شبانان مهربان و خداشناسی خدمت می کنند پیش نمیاد بسیاری امروزه این الگوی تعلیمی را رد می کنند. و ما به خاطر نادیده گرفتن رابطه تعلیمی پولس تیم در تعلیم شبانان جوان خسارت زیادی رو تحمل می کنیم فقط خدا میدونه چند نفر از ایمانداران جوان راهشان را گم کردهاند و عواقب به وحشتناکی را تحمل کرده اند فقط به خاطر اینکه ایمانداران بالغی نبودند که اونها رو در ایمانشون هدایت کنند اگر شما در ایمان و یا در خدمتتون جوان هستید شاید نیازمند یک پولس باشید اگر شما ایماندار بالغ و ای هستید و شبانی جوان و یا یک نوع ایمان رو در ایمانش هدایت و تعلیم نمی دهید از این بابت مقصر و گناهکاری بذارید باز یادآوری کنم که وقتی عیسی مسیح کسانی را که بعدها رسول شدن ملاقات کرد رو به اونها کرد و پرسید چه می خواهید؟ در اصل اونها جواب دادند استاد کجا زندگی می کنی؟ او گفت بیایید و ببینید در باب اول انجیل یوحنا گفته شده که آنها آمدند و دیدند عیسی کجا زندگی میکنه و با او زندگی کردند بعدها برای او زندگی کردن و هر کدام از اونها به خاطر او مردن. چون وقتی دعوت او را پذیرفتند و با او زندگی کردن چیزهایی دیده بودند. عیسی رسولان رو در رابطهای تک به تک شاگردسازی سازی کرد. این معنی دقیق شاگرد هست. کسی که کارها رو به صورت عملی یاد میگیره. روش پویای تعلیم عیسی برای آموزش و شاگردسازی رسولان همین بود. بیایید و ببینید. برای انجام این کارانها آنها رفتند و با او زندگی کردند. پولس هم تیموتاوس رو بیشتر به همون روش تعلیم داد. پولس وقتی در این متن 13 بار به تیموتاوس میگه تو میدانی چیزهایی رو به یاد تیموتاوس میاره که او از پولس دیده بود چون با او زندگی کرده بود و با او کار کرده بود. تو میدانی من به چی ایمان دارم؟ میدانی چقدر رنج کشیدم تیموتاوس از کجا میدونست تیموتاوس میدونست چون وقتی پولوس رنج میکشید او همراهش بود او وقتی پولوس رو ملاقات کرد که او رو در لستر سنگسار کرده بودند و به حال مرگ رها شده بود وقتی این اتفاق افتاد تیموتاوس مرد جوانی بود زمینه آشنایی تیموتاوس با پولوس در زمان رنج پولوس بوده پولوس به این اشاره میکنه و به تیموتاوس میگه اما تو از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی آگاه هستی و ایمان بردباری محبت و پایداری مرا را دیده ای. و همچنین رنج آزاری را که در انتاکیه و ایقونیه و لسره دیدم مشاهده کردی و میدانی چه آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همه اینها رهایی بخشید این را از کجا میدونست؟ من مطمئنم که پولوس محبتش را به تیموتاوس زمن صحبتهاش ابراز کرده بود او میگه بردباری منو دیدی ما فکر نمی پولس پولوس شخص صبوری بوده باشه او شخص پرجنبوجوشی بوده و بارها او رو دیدیم که آدم صبری بوده او نخواست که یوهننای معروف به مرقس رو در سفر دوم بشارتیش با خودش ببره چون مرقس در سفر اول بشارتی وقتی او رو در جفا دید او رو رها کرد و به خانه رفت اما در آخرین سخنانش برای می‌نویسه. تنها لغا با من است مرقس را بردار و با خود بیاور چون برای کارم مفید است واضحه که بارنابا با صبوری با مرقس کار کرده بود وگرنه او هرگز خادم مثمر ثمر نمی شد پولس حوصله نداشت با یوحنای مرقس کار کنه اما در مورد تیموتائوس بسیار صبوری کرده بود و تیموتائوس این رو میدونست چون با پولس زندگی کرده بود و با او کار کرده بود اون نو صبوری که پولس داشت از ثمرات روح القدس بود بخشی طبیعی از شخصیت خود پولس. پولس ادامه میده و چیزهایی رو مینویسه که می میدونه. او میگه اما تو باید به با آنچه آموختی ایمان راسخ داشته باشی. تو به صحت و درستی آنها اطمینان داری زیرا میدانی که آنها را از افراد قابل اعتمادی همچون من آمخته ای. چالش بزرگی که پولس پیش روی تیموتاوس میذاره این هست. تیموتائوس با چیزهایی که میدونی چیکار خواهی کرد؟ این اصل بزرگی در سراسر کتاب مقدس هست. با چیزی که می دونید چی کار خواهید کرد؟ مرتباً در کتاب مقدس به ما تأکید می کنه که با چیزی که می دونیم چی کار خواهیم کرد. در اکثر فرهنگ های ما، ما بر دانستن بسیار تأکید می کنیم. ما معتقدیم که دانش ارزش هست و معتقدیم که فقط دانستن شما رو تبدیل به شخصی ارزشمند می کنه. در اکثر فرهنگ های امروزی، اگر شما مدرکی داشته باشید که نشون بده شما دانش زیادی دارید از شما خیلی تجلیل میشه اما در کتاب مقدس تاکید بر این نیست که شما چی میدونید در سراسر کتاب مقدس تاکید بر این هست که با چیزی که میدونید چیکار میکنید عامل پاسخگویی در کتاب مقدس بسته به سن شخص نیست عامل پاسخگویی در کتاب مقدس به این بستگی داره که ما چقدر میدونیم ما در مقابل چیزی که میدونیم پاسخگو هستیم تیموتاوس دانش کتاب مقدسی و تعلیم روحانی زیادی داشت، چون که مادر او کتاب مقدس رو در کودکی به او تعلیم داده بود، مادر بزرگ او و پولس رسول هم به او تعلیم داده بودند. تیموتاوس یقیناً چیزهای زیادی میدونست. او چیزهای زیادی را رو به روش تجربی کسب کرده بود و بنابراین پولس با علم به این که در آستانه جان دادن هست، در آخرین سخنانش به تیموتاوس میگه. اما تو باید به آنچه آموختی ایمان راسخ داشته باشی تو به صحت و درستی آنها اطمینان داری زیرا میدانی که آنها را از افراد قابل اعتمادی همچون من ای. وقتی پولوس از تیموتاوس درخواست میکنه که مسئولیتش رو بدونه او رو تشویق میکنه و میگه کلام رو موعظه کن وقتی پروفسور دیگ وودوارد در دانشکده بود و سعی داشت چیزهایی رو که یاد میگرفت طبقه بندی کنه نامه ای از پدرش دریافت کرد پدرش سه کلاس سواد داشت اما مرد فداکاری بود مردی بود که خدا را می شناخت و کلام او را میدونست در نامه برای دیک او گفته بود من شایسته نیستم که تمام بحث هایی را که در نامه گذشته ات مطرح کردی رد کنم از بسیاری جهات حتی در مقامی نیستم که به تو نصیحت کنم اما به هر حال می خواهم به تو نصیحت کنم می همون چیزهایی رو برای تو بنویسم که دو هزار سال پیش شبان پیری برای شبانی جوان نوشت. او نوشت و زیر این کلمات خط کشید. کلام خدا را موعظه کن. کلام خدا را موعظه کن چون کلام خدا چیزیه که خدا به اون برکت خواهد داد. کلام خدا واقعا قلب انسانها را عوض خواهد کرد. کلام خدا تولدی تازه خواهد آورد و کسانی را که از نو متولد شدهاند پرورش خواهد داد. این نصیحت خوبی از طرف پدرش بود و در واقع همون نصیحتی بود که پولس به تیمو کرد. من به خاطر این نصیحت خدا رو شکر می کنم. چون حالا میتونم به گذشته نگاه کنم و با شکر گذاری خدایی رو بپرستم که کلامی رو نوشت که من میتونم در مورد صدها زندگی تبدیل یافته که شخصا می شناسم به کار بگیرم و در مورد هزاران نفری که نامه نوشته و ایمانشون رو به مسیح اعتراف می و با ما در مورد زندگی های تبدیل یافتشون صحبت می کنن تیموتاوس پسر ایمانی پولس بود از این رو پولس به عنوان پدر روحانی او نصیحت بزرگی رو برای تیموتاوس نوشت کلام خدا رو موعظه کن چون تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در ادالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود کتاب مقدس قدرتی زنده است. کتاب مقدس یک نیرو هست. کتاب مقدس میتونه تولد تازه به بار بیاره و میتونه کسانی رو که تولد تازه یافتن بنا کنه. این یکی از دلایلیه که من دانشکده کوچکی کتاب مقدس رو برپا کردم. من سعی ندارم که مردم رو متخصص کتاب مقدس بکنم. من قصد ندارم که فقط یک سری اطلاعات به مردم بدم. هدف من از دانشکده کوچکی کتاب مقدس اینه که شما بتونید وارد کلام خدا بشید و کلام خدا بتونه وارد شما بشه از زمانی که دانشکده کوچک کتاب مقدس رو شروع کردم تجربه من این بوده که وقتی مردم این تکالیف رو انجام میدن حتی اگر چه حداقل کار رو میکنن و فقط 66 کتاب مقدس رو میخونن وقتی وارد کلام خدا میشن و کلام خدا وارد اونها میشه اونها تبدیل میشن و معجزات اتفاق میافته وقتی شما مردم رو وارد کلام خدا میکنید و کلام خدا رو وارد اونها میکنید چیزهای زیبایی برای اونها اتفاق میفته. اونهایی که قبلا تولد تازه رو تجربه کرده غذای بیشتری دریافت میکنن. بیشتر تقدیس میشن و بیشتر تشویق میشن. قدمهایشان برای رفتن در راه خدا و برای انجام کار خدا مستحکمتر میشه. کلام خدا اراده خدا رو در زندگی اونها تسبیت میکنه. وقتی مردم وارد کلام خدا میشن، چیزهای عجیبی برای اونها پیش میاد و به این دلیلی که من دانشکده کوچک کتاب مقدس رو برپا کردم. من معتقدم که پولس به تیموتاوس میگفت: تیموتاوس، تو باید این کارو بکنی. تو از کودکی کتاب مقدس رو یاد گرفتی. مادر بزرگت به تو تعلیم داده. مادرت به تو تعلیم داده. من به تو تعلیم دادم. تو میدونی که این چیزها حقیقت دارن چون تو کسانی رو که به تو تعلیم دادن میشناسی. حالا چیزهایی رو که آموختی موعظه کن. و در چیزهایی که یاد گرفتی بمان. وقتی پولس به تیموتاوس نصیحت میکنه که در چیزهایی که یاد گرفته بمونه منظورش این نبود که تیموتاوس فقط باید به یاد گرفتن ادامه بده منظور پولس این بود که او تمام حقایقی رو که یاد گرفته بود در زندگی و خدمت خودش به کار بگیره در این متن خارق از کتاب مقدس پولس میگه تیموتاوس این کاریه که باید در مورد چیزهایی که میدونی انجام بدی محققین معتقدند که وقتی تیموتاوس این نامه را دریافت کرد پولس ادام شده بود پولس به تیموتاوس میگه سعی کن قبل از زمستان بیایی و منو ببینی نظر بر این هست که پولس در تابستان ادام شده بود خیلی زودتر از زمانی که انتظارش رو می کشید تیموتاوس به موقع به اونجا نرسید همین باعث میشه که این جملات دوم تیموتاوس بسیار وحشتناک به نظر بیاد او می این را می را میکنم. چون شاید دیگر نتوانم نزد تو آمده کمکت نمایم وقت رهلت من فرا رسیده و به زودی راهی آسمان خواهم شد من برای خداوندم با دل و جان مبارزه کردم و نسبت به او وفادار مندم. اکنون دیگر مسابقه به پایان رسیده و وقت آن است که استراحت کنم حال تاجی در آسمان انتظار مرا میکشد تاجی که خداوند ما مسیح آن داور عادل در روز بازگشت خود به من عطا خواهد فرمود اما نه فقط به من بلکه به تمام کسانی که با زندگیشان نشان میدهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند سعی کن هر زودتر نزد من بیای زیرا دیماس مرا ترک کرده او به خاطر علائق و دبستگی هایش به امور این دنیا به تسالونیکی رفته در ضم کریسکییس به غلاطیه و تیتوس به دلماتیه رفتن فقط دوغا پیش من است. هرگاه آمدی مرقس را نیز با خود بیاورد زیرا به کمک او احتیاج دارد. تیخیکوس همدیگر هم دیگر اینجا نیست چون او را به افسوس فرستادد. وقتی میایی فراموش نکن ردای مرا که در شهر ترواز نزد کارپوس گذاشتهام هم همراه بیاوری. در ضمن کتاب ها به خصوص اوراق پوستی را نیز بیاورد. من فکر می این متنی بسیار غمانگیز و در ضمن بسیار حیجاننگیز هست. پولوس برای چیزهایی که دنباله زیبایی برای متن دیگری از کتاب مقدس هست که او در اوایل خدمتش نوشته بود. پولس برای تیموتائوس مینیویسه تیموتاوس من مسابقه خوبی دادم و برنده شدم. من خوب جنگیدم و پیروز شدم. به همین دلیل میروم تا تاج پیروزی را به دست آورم. در اون ایام اونها بازیهای ورزشی داشتند و برندگان مسابقات ورزشی به جرگه برندگان میرفتند و در آنجا بر سرشان تاج‌های گل میگذاشتند. این فقط چیزی موقتی بود. پولس در اول قرنتیان باب نه آیه 25 میگه ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده میکند سخت میکوشد و زیاده روی خودداری میکند. آنها چنین میکنند تا تاج گلی را که زود پجمرده میشود به دست آورند. ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی میماند انجام میدهیم. ورزشکاران برای به دست آوردن پیروزی و کسب اون تاج گل از هیچ تلاشی مزایقه نمی کردم. وقتی پولوس در روایل زندگی و خدمتشین این رو برای قرنتیان می نوشت، او به زندگی و به خدمت خودش نگاه می کرد و می گفت، این مثل یک مسابقه دو هست و وقتی من در این مسابقه می دوم فقط دویدن نیست بلکه خود را به جلو می کشم وقتی مردم در مسابقه دو شرکت می همه می دوام. اما فقط یک نفر برنده می شه. تفاوت هست بین دویدن برای پیروزی. و دویدن بیهده پولوس میگه وقتی من میدام برای پیروزی خواهم دوید بعد او میگه این مثل یک نبرده وقتی من میجنگم فقط مشت به هوا نخواهم زد من نخشهی برای نبرد دارم من برای زدن مکان مشت جایی رو تعیین خواهم کرد و راهکاری برای پیروزی در این نبرد خواهم داشت وقتی پولوس زندگی خدمتیش رو شروع کرد براساس اساس از باب نه اول قرنتیان این طور به خدمتش نگاه می کرد حالا وقتی پولس به پایان زندگی و خدمتش می رسه، در ادامه قرنتیان نه می نویسه من مسابقه خود را به پایان رسوندم من برای پیروزی دویدم و پیروز شدم بعد به تاج پیروزی اشاره می کنه و می گه خداوند عیسی مسیح تاجی برای من و هر کدام از کسانی که در این مسابقه برنده بشن داره خداوند عیسی مسیح تاج را بر سر من خواهد گذاشت و من در زمره برندگان در پادشاهی آسمان خواهم بود. من نبرد کرده و پیروز شده ام و تاج پیروزی از آن من خواهد بود. البته او تیموتائوس رو به چالش میکشه که آیا تو نیز این کار رو خواهی کرد؟ آیا تو برای پیروزی خواهی دوید؟ آیا تو برای پیروزی خواهی جنگید؟ وقتی به پایان زندگی خودت برسی، آیا قادر خواهی بود که بگی مسابقه را به پایان بردی و در نبرد پیروز شدی؟ دیک داستانی تعریف میکنه از زمانی که خادم جوانی بوده و خدمتش رو شروع کرده یک خادم قدیمی سکته قلبی داشته او به دیک خبر میده که به بیمارستان بیاد وقتی او به بیمارستان میرسه این خادم قدیمی که در طی بیش از چهل سال هفت کلیسا رو خدمت کرده بود زیر چادر اکسیژن بود او زیپ چادر رو باز میکنه تا بتونن با هم دیگه دست بدن او گفت دیک من آمادم که فارغ تحصیل بشم ممکن لطفا خطابه فارق و تحصیل من تو موعظه کنی او از دیک میخواست که در مراسم تدفین او این قطعه رو موعظه کنه پدر تمام شد روحم را رو به دست‌های تو میسپارم. او مطمئن بود که شبان پیر میخواست که او از این متن از یوحنا در مراسم تدفین او موعظه کنه چون میخواست شبان جوان به این فکر کنه که وقتی به پایان خدمتش می‌رسه وضعش چگونه خواهد بود شبان پیر می‌تونست بگه تمام شد او هیچ کار نیمه تمامی نداشت او میدونست وقتی که پروفسور دیک اون پیام رو می میکرد روح القدس به او میگفت تو میخوای چی کار کنی؟ سی سال بعد، چهل سال بعد یا پنجاه سال بعد آیا خواهی توانست بگی تمام شد؟ این دیدگاهی هست که میتونیم در اون آخرین سخنان پولس رسول رو که هرچند برای تیموتاوس نوشته شده ولی در واقع برای تمام مردم دنیا هست بررسی کنیم من در مسابقه نهایت کوشش خود را کردم و دور خود را تمام کردم و ایمانم را حفظ کردم اکنون تاج پیروزی در انتظار من است تو چیتی متاؤز؟ تو با چیزهایی که میدونی چی کار خواهی کرد؟ آیا تو خواهی جنگید تا پیروز بشی و خواهی دوید تا مسابقه را ببری؟ من هم مانند پولوس رسول در پایان شما را به چالش میکشم آیا شما قادر خواهید بود بگید من دویدم و در مسابقه برنده شدم؟ و جنگیدم و در نبرد پیروز شدم و به این دلیل تاج پیروزی رو به دست خواهم آورد؟ با چیزی که می دونیم چی کار خواهیم کرد؟ این سوال بزرگیه، این طور نیست؟ دانش بدون کاربرد مفهومی نداره عزیزان این تور بهش فکر کنید اعمال خوب ما ما رو نجات نخواهد داد اما شاید باعث بشه کسی دیگه نجات پیدا کنه امیدوارم خدا به شما دلگرمی بده به شما طاقت بده و در پیروی مسیح به شما اتحاد و یک دلی بده تا با یک دل و یک زبان بتونید خدا پدر خداوندمون عیسی مسیح رو جلال بدید.